خلاص شدن از زمان روانی یاد بگیر تا زمان را فقط در موارد عملی زندگی روزانه خود به کار بگیری می توانیم این زمان را زمان ساعتی بنامیم اما پس از استفاده از آن در این موارد بلا فاصله به آگاهی لحظه حال برگرد. به این شیوه دیگر زمان روانی که یکی انگاشتن خود با گذشته و فرافکنی مدام خواهشا به آینده است در تو هم باشته نمی شود. زمان ساعتی فقط قرار گذاشتن و یا تنظیم برنامه سفر نیست. زمان ساعتی شامل درس گرفتن از گذشته برای عدم تکرار اشتباهات، تعیین هدفها و گام برداشتن به سویانها نیز می شود. پیش آینده بر اساس الگوها و قوانین فیزیکی و ریاضی و غیره و نیز یادگیری از گذشته و تدارک عملکردی درست بر اساس پیش نیز بخشی از کارکردهای زمان ساعتی است. اما حتی در اینجا، در حوزه زندگی عملی جایی که نمیتیم بدون رجوع به گذشته و آینده کاری انجام بدهیم لحظه ی حال از اهمیتی اساسی برخوردار است. هر درسی که از گذشته میگیریم مربوط به لحظه ی حال است و در لحظه ی حال به کار گرفته می شود. تنظیم برنامه ها و تعیین هدف ها و عمل کردن برای رسیدن به هدف ها نیز در لحظه ی حال اتفاق میافتد مرکز توجه آدم های روشن شده همواره لحظه حال است با وجود این آنها در حاشیه نسبت به زمان نیز آگاهی دارند به تعبیر دیگر آنها از زمان ساعتی استفاده می‌کنند اما از زمان روانی آزاد و رهایند این نکته را خوب به خاطر داشته باش مبادا زمان ساعتی را به زمان روانی تبدیل کنی برای مثال اگر در گذشته مرتکب اشتباهی شده ای و از آن اشتباه در لحظه حال درس می‌گیری، می توان نتیجه گرفت که از زمان ساعتی استفاده کرده ای. از طرف دیگر اگر در ذهن خود مدام درگیر اشتباه گذشته خود هستی و خود را سرزنش می کنی و گناهکار می دانی می توان نتیجه گرفت که تو من را با آنچه از آن من است اشتباه گرفته ای. کان اشتباه را به پاره ای از هویت خود تبدیل کرده ای و در زمان روانی ساکن شده ای چون این هویت، حوییت هویت حقیقی تو نیست، عدم بخشش به طور ضروری در بردارنده بار سنگین زمان روانی است اگر برای خود هدفی تعیین کنی و برای دستیابی به آن هدف بکوشی، در واقع از زمان ساعتی استفاده کردی تو میدانی به کجا می خواهی بروی اما در عین حال لحظه حال را مقتنم میدانی و آن را مرکز توجه خود قرار دادی اگر به حد افراد روی هدف خود متمرکز شوی و این کار را برای دستیابی به خوشبختی، کامیابی یا رسیدن به احساسی کاملتر از خود انجام بدهی می توان گفت که لحظه حال را مقتنم ندانستی و آن را از کف دادی تو لحظه حال را به وسیلی فروکاستی برای رسیدن به آینده‌ای که ذاتا واقعیت ندارد تو زمان ساعتی را به زمان روانی تبدیل کردی حالا دیگر سفر زندگی تو یک ماجرای هیجانانگیز انگیز نیست بلکه هرسیست برای رسیدن برای بدست آوردن، برای داشتن و بیشتر داشتن تو دیگر توان استشمام رایه گلهای کنار جاده و دیدن آنها را نداری تو دیگر توان دیدن معجزه و زیبایی زندگی را نداری تو حضور نداری تا ببینی و بشنوی و زندگی کنی تو در لحظه حال نیستی من متوجه اهمیت لحظه حال هستم اما نمیتوانم حرف شما را که میگویید زمان پنداری باطل است را قبول کنم وقتی من میگویم زمان پنداری باطل است منظورم اظهار مطلبی فلسفی نیست من فقط یادآور این حقیقت ساده هستم حقیقتی که چنان بدیهی و آشکار است که به دشواری آن را میفهمی و شاید هم آن را معنا بدانی اما اگر آن را خوب درک کنی چنان تیز و بران است که بندهای همه مسئله ها و مشکلات تو را میبرد. بگذار تکرار کنم لحظه حال تمامی دارایی توست. زمانی وجود ندارد که زندگی تو در لحظه حال سپری نشود. آیا این موضوع حقیقت ندارد؟ احمقان بودن باورمندی به زمان روانی. اگر به ظهورات و جلوه‌های گوناگون زمان روانی نگاه کنی، بی‌تردید متوجه میشوی که زمان روانی چیزی جز بیماری نیست. برای مثال، زمان روانی خود را در ایدولوژی های مانند مارکسیسم، سوسیالیسم اجتماعی، تعصبات و خشک‌مغزی‌ها که فرض می فضیلت چیزی است که در آینده به دست می آید و بنابراین هدف وسیله را توجیه می کند بروز می دهد هدف یک ایده است نقطهی در آینده نقطهی ای که حاصل فرافکنی ذهن است نقطهی که در انجا می توان به خوشبختی دست یافت کامیاب شد به ادالت و آزادی و غیره رسید در بیشتر موارد هایی که برای رسیدن به این هدفها انتخاب میکنیم خودشان به اصارت شکنجه و نابودی آدمها در لحظه حال تبدیل میشوند برای مثال در روسیه چین و کشورهای دیگر بیش از پنجاه میلیون انسان کشته شدن تا آرمان کمونیسم تحقق پیدا کند تا دنیایی بهتر برای آدمها فراهم آید این فقط یک نمونه است نمونه ای از اینکه چگونه باور به بهشت آینده می تواند دوزخی را در لحظه حال بیافریند. آیا تردیدی هست در این نکته که زمان روانی یک بیماری ذهنی جدی و خطرناک است؟ این الگوی ذهنی چگونه در زندگی تو عمل می کند؟ آیا همواره می کوشی تا در جایی غیر از جایی که هستی قرار بگیری؟ آیا بیشتر کارهای تو وسیله هستن برای رسیدن به هدفی؟ آیا شادیهای تو چیزهایی دم دستی هستند مانند لذتهای زودگذر سکس غذا مشروب مواد مخدر یا هیجانات و شلوغ و پلوغ کردنها آیا همیشه میخواهی چیزی بشوی و یا به چیزی برسی آیا فکر میکنی اگر بیشتر داشته باشی کامیابتر خواهی بود بهتر خواهی شد و از نظر روانی وضعی بهتر خواهی داشت آیا منتظر کسی هستی که پیدا شود و به زندگی تو معنایی ببخشد؟ در حالت معمولی، حالت یکی انگاری خود با ذهن، حالت روشن آگاهی، قدرت و توان بی خلاقیت آدمی که در لحظه حال نهفته است، توسط زمان روانی مدفون می شود. امگاه زندگی تو از شور، شوق، سرزندگی، ترابت و احساس حیرت، تو میشود الگوهای کهنه فکرها، عواطف، رفتار، واکنش‌ها و آرزوها در تکراری بیپایان ظاهر می‌شوند به تو هویت می‌بخشند اما واقعیت لحظیه حال تو را دفن می‌کنند آنگاه ذهن دل مشغول آینده می‌شود و از لحظیه حال نادلچس می‌گریزد دید منفی و درد و رنج ریشه در زمان دارند اما باور به اینکه آینده بهتر از حال خواهد بود همواره پندار باطل و بی اساسی نیست لحظه حال ممکن است لحظه وحشتناکی باشد و ممکن است اوضاع در آینده بهبود یابد که معمولاً چنین نیز می شود. معمولاً آینده کپی گذشته است. ممکن است تغییراتی سطحی اتفاق بیفتد. اما دگرگونی بنیادی زندگی تو منوط به آن است که تصمیم بگیری در لحظه حال حضور پیدا کنی و با کمک گرفتن از نیروی لحظه حال گذشته را محو کنی. را که تو آینده میخوانی چیزی نیست، مگر بخش جدایی ناپذیر آگاهی تو در لحظه ی حال. اگر ذهن تو باری را از گذشته ها به دوش می کشد، این بار در آینده سنگین تر خواهد شد. گذشته خود را به واسطه ی فقدان لحظه ی حال زنده نگه می دارد. کیفیت زندگی تو در لحظه ی حال است که آینده ی تو را شکل می‌دهد. آینده ی که، بی تردید به عنوان لحظه ی حال تجربه خواهد شد. ممکن است ناگهان صاحب ده میلیون دلار شوی، اما این تغییر سطحی خواهد بود. تو باز هم بر اساس همان الگوهای شرطی شده عمل خواهی کرد، البته در شرایطی تجملاتی تر. انسان توانسته است اتم را بشکافد. به جای کشتن ده دوازده نفر با یک چماغ چوبی، و اکنون میتواند با فشار دادن یک دکمه میلیون ها انسان را بکشد. آیا این توانایی نوظهور یک دگرگونی بنیادی است؟ اگر کیفیت آگاهی تو در لحظه حال است که آینده تو را شکل میدهد پس آنچه که کیفیت آگاهی تو را در لحظه حال شکل میدهد کدام است؟ میزان حضور تو. بنابراین، تنها جایی که دگرگونی بنیادی و حقیقی رخ میدهد و گذشته محو می شود لحظه حال است. طلمبار شدن زمان روانی موجب به وجود آمدن همه نگرش‌های های منفی به زندگی و نفی لحظه حال است. ناراحتی استاضرا،تننشها، فشار های عصبی، نگرانی، همه شکل های ترس، معلول وفور آینده در زه و کمبود لحظه حال در توست احساس گناه، حسرت، سرزنش خود، غم و اندوه تلخ کامی و همه شکل های عدم بخشش خود معلول وفور گذشته در زه و کمبود لحظه حال در توست بسیاری از آدمها نمی‌توانند نمیتوانند باور کنند که می‌شود از همه های منفی نسبت به زندگی خلاص شد این خلاصی مرتبه‌ای از رهایی است که همه آموزه‌های معنوی به آن اشاره کردند این وعده رهایی است اما نه وعده خیالی در آینده بلکه وعده‌ای برای اینجا و لحظه حال ممکن است پذیرفتن این نکته برای تو دشوار باشد که تمامی مشکلات و درد و رنج های تو زاده زمانند تو معتقدی که مشکلات و هایت معلول شرایط خاص زندگی تو است از نظرگاهی شایع این نکته درست به نظر میرسد اما اگر عملکرد کرد مشکل آفرین ذهن را نادیده بگیریم وابستگی ذهن به گذشته و آینده و نفی لحظه ها مشکلات و دردرنجها جا ها جابجا می میشوند اما تمام نمیشوند اگر امروز همه مشکلات و دردها و رنجهای تو به طور معجزه آسا برطرف شود اما تو در لحظه حال حضور پیدا نکنی و آگاهتر نشوی خیلی زود خود را با مشکلات و دردها و رنج‌های مشابه روبرو خواهید دید آنها همچون سایه تو را دنبال می‌کنند و هر جا بروی با تو می‌آیند در نهایت یک مشکل بیشتر وجود ندارد ذهن وابسته به زمان نمیتوانم باور کنم که میتوانم به ای برسم که از همه مشکلاتم رهای رها باشم حق با توست تو هرگز نمیتوانی به چنین ای برسی زیرا تو همکنون در آن نقطه هستی در زمان هیچ رهایی وجود ندارد تو نمیتوانی در آینده آزاد باشی حضور در لحظه حال کلید آزادی توست بنابراین تو فقط در لحظه حال است که میتوانی آزادی را تجربه کنی دعا کردن زندگی در زیر لایه وضعیت زندگی نمیدانم چگونه می توانم در لحظه حال آزاد باشم. من معمولا از زندگی خود در لحظه حال خوشنود نیستم. این یک واقعیت هست و اگر من به خود بباورانم باورانم که آنچه در لحظه حال می خوب است فقط خود را گول زدم زیرا می دانم که چنین نیست ذهن تو اسیر زمان است و تو فکر می کنی که ساکن لحظه حال هستی ممکن نیست همزمان ناشاد و ساکن لحظه حال باشی. آنچه را که تو زندگی خود میخوانی چیزی نیست مگر وضعیت زندگی تو وضعیت زندگی تو زمانی روانی است گذشته و آینده حوادثی در گذشته زندگی تو رخ داده است که تو دوست داری آن حوادث اتفاق نمیفتادند تو هنوز در برابر آنچه در گذشته اتفاق افتاده است مقاومت می کنی و وکنون در حال مقاومت کردن در برابر چیزی هستی که هست این امید است که تو را نگه داشته است اما امید همواره متوجه آینده است این توجه مداوم به آینده موجب نفی لحظیه حال میشود. با نفی لحظیه حال است که احساس ناشادمانی میکنی. درست است که وضعیت کنونی زندگی من معلول اتفاقات گذشته است اما وضعیت کنونی زندگی من وضعیت کنونی من است و همین وضعیت هست که مرا ناشاد می وضعیت زندگیت را چند لحظه فراموش کن و توجه خود را به زندگیت معطوف کن چه تفاوتی دارند این دو؟ وضعیت زندگی تو در زمان وجود دارد. زندگی تو در لحظه حال می وضعیت زندگی تو ساخته و پرداخته ذهن توست. زندگی توست که واقعی است. پیدا کن در تنگی را که به زندگی منتهی می شود. این در لحظه حال نام دارد. ممکن است وضعیت زندگی تو مالا مال از مشکلات باشد. بسیاری از وضعیت‌های زندگی چنین است، اما ببین آیا در لحظه ی حال مشکلی داری نه فردا و یا ده دقیقه ی بعد، بلکه در لحظه ی کنونی آیا در این لحظه مشکلی داری وقتی زندگی خود را پر از مسئله و مشکل می‌بینی، دیگر جایی برای تازه‌ها باقی نمیگذاری که بیایند و در تو جایی بگیرند کلید حل مشکلات در دست تازه هاست بنابراین هر وقت که مجالی دست داد جایی برای تازه ها باز کن فضایی تا بتوانی زندگی خفته در زیر لایه وضعیت زندگیت را پیدا کنی از حواس خود به طور کامل استفاده کن در جایی که هستی باش به پیرامون خود نگاه کن فقط نگاه کن تفسیر و تعبیر نکن نور را ببین، شکلها و صورتها را ببین، رنگها را ببین، حالتها را ببین، نسبت به این حضور ساکت و خاموش همه چیز آگاه باش. نسبت به فضایی که همه چیز را در خود جای داده است، آگاه باش. به صداها گوش بده، آنها را مورد قضاوت قرار نده، به سکوتی که زیر لایه صداها پنهان است، گوش بده. چیزی را لمس کن، هر چیزی را که میخوایی، آن را احساس کن و هستیش را تعیید کن. ریتم نفسهای خود را مشاهده کن. هوایی را احساس کن که داخل ریه های تو میشود و دوباره خارج میشود. احساس کن انرژی زندگی را که در درون توست. بگذار همه آن چیزهایی که در درون و بیرون تو هستند، همچنان که هستند باشند. بودن همه چیزها را بپذیر به جرفای لحظی حال فرو برو تو اکنون دنیای مردی مفاهیم ذهنی را پشت سر گذاشتی دنیای زمان را تو از ذهن حماقت پیش بیرون آمده ای. ذهنی که انرژی حیاتی تو را میمکد و تو و جامعه و زمین را مسموم می‌سازد تو حالا از خواب زمان بیدار شده ای. و لحظه حال را لمس کردی.